هر که را دشمن پیش است، اگر نکشد، دشمن خیش است. سنگ بردست و مار، سر برسنگ، خیر رایی بود قیاس و درنگ. و گروهی به خلاف این مسلحت دیدند و گفتند که در کشتن بندیان تعمل اولاتر است به حکمان که تا اختیار باقی است، توان کشت و توان بخشید و اگر بی‌تأمل کشته شود محتمل است که مسلحتی فوت شود که تدارک آن ممتنع باشد نیک سهل است زنده بیجان کرد کشته را باز زنده نتوان کرد شرط عقل است صبر تیرانداز که چو رفت از کمان نیاید باز